بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الله على سيدنا محمد و آلها الصلاة على سيدنا محمد ولي محمد واجب فرجهم. خد کو رام شد. هو العليم. الدرس الرابع اوصاف الله تعالى الثبوتیه. اطبوتیه یعنی صفات الجمال والکمال ما در طی این درس با یاره خداوند مهربان اوصاف ثبوتیه خداوند متعال را خواهیم خواند اوصاف یا صفتهایی که برای خداوند متعال ثابت هست و هست نه اون اوصافی که نیست درست؟ شد؟ اوصافی که برای خداوند متعال ثابت هست و هست، اوصاف جمع صفت برسو؟ به جگه خصوصیت اتبوتیه یعنی الاؤصاف اتبوتیه اوصاف سبوتیه یکی در لغت بود که گفتیم یعنی برای خودمان دبوتال ثابت منظور از اوصاف سبوتیه در بحث عقاید چیست؟ منظور از اوصاف سبوتیه در بحث عقاید صفات الجماله ول کمال های جمال و کمال هست جمال رو میدانیم معنیش چیست؟ آه. کمال کمال کامل خوب دیگه درسته؟ پس یعنی اون چی که از زبایه هاست و اون چی که از کمالات هست برای خداوند متعال ثابت هست به این میگه اصاف سبوتیه یعنی صفات کامل آره صفات خوبی ها اینطوری بگیم بهتره هست صحیح شد؟ آره. خیلی عالی. بعض الاوصاف الثبوتيه. اینجا دقت کنیم هر چی که از اوصاف جمال و کمال هست، برای خداوند متعال هست. هیچ صفتی یافت نمیشه که جمال باشه، جمالیه باشه، کمالیه باشه و در خدا نباشه. ناوز بی لا اینطوری نیست. ولی ما در اینجا هشت تایشه رو میخوایم تایش از این جهت اینجا کلمه بعض آمده. بعبل اوصاف ثبوتیه. یعنی تعداد از صفت های ثبوتیه خداوند متعال. درست شد؟ آره؟ برم. الاصف الاولا. القادر. الله تعالی قادر و مطلق. اینهو. تا تَعَالَ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شیء قطعا خداوند متعال قادر بر همه چیز هاست همه چیز هست قادر و قدرت من بر همه چیز هست آره؟ وجودن و وعدما وجودا یعنی چه یعنی خداوند متعال قدرت داره که همه چیز رو که بخواهه به وجود بیاره و خداوند متعال قدرت داره که همه چیز رو نیز کنه درست خودسان و بقاءن خداوند متعال قدرت داره که همه چیز را یا یک چیز خاص را در حال نو کردن قرار بده خداوند متعال قدرت داره که یک چیز رو باقی بگذارن در همه جهاتی که تصور می شود خداوند متعال تصورش آقلانه است البته خداوند متعال قدرت دارد که همونطوره ایجاد کند خداوند متعال می تواند یک چیز را باقی بگذارد می تواند یک چیز را نو کند یک جمله معروف هست بشنم شایدم شنیده باشید العالم متغیر کل خلو متغیر حادث فالعالم حادث عالم رو که میگین میبینیم میگه در حال تغییر هست واقعا در حال تغییر دیگه نه همه لحظه ما شما در حال تغییریم چطور چون که شما وقتی دارین یک کلام جدید از اسابه خود رو تغییر کردین درست همینطوری که ما وقتی داریم به شما حرف میزنیم نسبت به سابق عوض شدیم یک کمی. چطور طور عوض شدیم؟ اگر حرف خوب زده بودیم کمال پیدا کردیم. سواب یافتیم. و خدا نخصه او طرف این نیست. درست شد؟ خب پس میبینیم در حال تغییریم دیگه همین که داریم تغییر میکنیم حدیث میشیم. جدید میشیم. حادث یعنی جدید. فلعالم حادث. پس دنیا در حال نوشودن هست. خداوند متعال اداعراد ای... خداوند متعال وقتی خواست نو کند میتواند و همینطور خداوند متعال اگر نخواهد نه. که نو شود نمیشود برست شد؟ خداوند متعال میتواند باقی بگذارد میتواند نگذارد متوجه شدیم؟ شوف نه ایده یا به من توجه کنید شوف نه شوف نه یعنی به من نگاه کنید بیدی نید این تمام شد تا اینجا خب اصفه الثانیه ال ال ال ال ال ال آلا قدرت خداوند متعال خوب واضح شد برای ما که به اینه قطعا خداوند متعال قادر هست بر هر چیزی که با وجود بیارد نیست. یا نیست کند نه. یا نو کند آب. یا باقی بگذارد سعیشان خب دقت کنیم چی میگیم ما شما با وجود آمدیم نه آب. یعنی خدا انده ما را با وجود آور آب. دقت میکن؟ آیا در بقای خش می توانیم باقی بمانیم یا نه ما نمیتوانیم باقی بمانیم مگر اینکه که متعال به فرماید فرماییم درست شد؟ آره اینطوره احسن کنیم اصفه اثانیه العالم فالله عز وجل علیمون حکیمون بکل الامون هیچ امری نیست که خداوند متعال به آن علم نداشته باشد و حکمت خداوند متعال هم به آن جریان پیدا نکرده باشد یا نکند خدا هم عالم است هم حکیم است علم و حکمت هر دوتایشو وقتی کنار هم قرار گرفت یه چیز خوب باوجود می آید کده همین؟ علم و حال آه عالم الله عز وجل پس خداوند عز وجل عالم است حکیم هست به و همه امرها به همه به همه چیز دیگه ام؟ امور امور امر یعنی هیچ چیزی نیست هیچ امری نیست هیچ مسئله ای نیست که خدای متعال علم نداشته باشه یا حکمتش خب دقت کنین اینجا قسمت حکمت را خواب دقت میکنین چی مگین اسلحه و نام برسود اسلحه سازی خودش یکی علم هست یا نیست این علم اسلحه سازی زمانی برای انسان نافع هست که انسان را بتواند نگه دارد اما اگر این علم اصل حساسی در جهت نابود کردن انسان استفاده بشه این علم اصلا در نمیخوره خداوند به همه چیز علم داره اما علم خداوند همراه با حکمت است یعنی همراه با حکمت یعنی چه یعنی در جهت نفع دار جریان پیدا میکنه اما در جهت شر جریان پیدا نمیکنه مگر اینکه خود انسان اون شر رو به خودش واجیب کرده باشه مثلا برای نمونه خداوند متعال اگر آدمی که بخواد کورشه شوه و کور نکنه معنیش اینه که این انسان توانایی نداره وقتی توانایی نداشته باشه و خداوند عذاب کنه خب این برای خداوند درست نیست که یک کس توانایی هم نداشته باشه عذابم کنه درست شد کسی که با دست خودش خودش رو کر کنه باید کور شود نه؟ آره این آره اگر کسی با دست خودش در نفس خودش ظلم کند همو ظلمت تو نفسی فی دعای کومل در دعای کومل داریم دیگه نه؟ آره درست شد؟ وقتی خودشان در خودشان ظلم کند خدا باید اقاب کند خدا باید جزا بدهد اگر جزا ندهد خدای نخواست در حق دیگه ممکنه زور حساب بشه خدا که نعوذ ظالم نیست دیگه. چون ظالم نیست لذا باید مقاب کند باید مجازات بکنه سری شد؟ آره آره اون که اراده خدا انجامشه که حالا میخوایم همراه با حکمت داریم الحی الحی خوالحیل خداوند متعال هم زنده هست و هم قیوم هست قیوم این کلمه قیوم را خو امروز ما با شما حالا چیزی با هم صحبت نمیکنیم روز بعدی که آمده انشاءالله شما میپرسیم که قیوم معنیش چیست آره درست شد. حی یعنی زنده خداوند متعال قیوم هم هست هم حی هست و هم قیوم هست ادامه شد القدیم الازدی الابدی از سرمدین خداوند متعال قدیم و ازلی است. قدیم و ازلی تقریب هست قدیم هست یعنی زمان در خداوند متعال راه نداره بلکه خود زمان مثل ما و شما یک از مخلوقات خداست ببینیم ما و شما باشیم نباشیم خدا هست زمان باشد نباشد خدا هست در به وقتی خالد هستن مردم جهنم شم نازو بله نمیشه اینه که دیگه زمان تقریبا از بین رفته درست شد؟ ممکنه زمان باشد اونجا ولی زمان دیگه تقریبا از کار افتاده ولی فعلا زمان جریان داره دیگه ما داریم اندازه گیری میکنیم زمان رو میکنیم؟ آدر گزر درست خدا از قدیم بوده یعنی پیش از زمان خدا بوده بعد خود خدا آمده زمان رو خلق کرده مثل اینو شماها کرده و همینطور الابدی ابدی از سرمدی خدا ابدی است ابدی یعنی چی یعنی بعد از زمان هم هست چرا چون زمان رو خودش خلق کرده بودیم فهمیدیم احسنت پس صفات سومم واضح شد و الصفه الرابعه المرید سرمدی یعنی ابدی قدیم سرمدی و ابدی و سرمدی ب الصفه الرابعه المرید المرید افعاله تعالى بالاراده والاختيار مريد یعنی اراده کننده یعنی چه خدا مورید هست؟ این که افعال و کارهای خداوند متعال با اراده خداوند متعال و از روی اختیار خداوند متعال هست. افعالهو یعنی کارها افعال جمعی فعل فعلها و کارهای هو یعنی خداوند متعال افعال و یعنی کارهای خداوند متعال با اراده و با اختیار هم سعیه شد؟ تمام تا اینجا؟ یعنی خداوند متعال مجبور نیست؟ خداوند متعال مجبور نیست؟ و اصفه الخامسه المدرك المدرك یعنی درک کننده هو العلیم آه هو العلیم که اولای درسته هو العلیم یعنی خداوند متعال دانست مدرك یعنی درک میکنه دیگه آلم هست و السمع شنواست و البصیر بیناست <تصفيق> علم آلیم دانا سمع شنوا بشیر بینا نرست شد؟ تمام؟ و اصفه از سادسه المتکلم اینهو تعالا متکلمون خدا منده متعال متكلم و سخنگو هست آره؟ نه؟ و الكريم و المجید قرآن کریم کلام خداوند متعال هست و القرآن الكريم و قرآن کریم کلامه المجید کلام مجید خداوند متعال هست کلام مجید قطعا خداوند متعال متکلم و گوینده است قايمين والقران الكريم كلامه المجید قرآن کریم کلام مجید خداوند متعال است تمام تا اینجا و اصف السابع الصادق انه صادق حولا و فعلا قتعا خداوند متعال راست هست هم در گفتار و هم در کردار خداوند متعال در افعالش صدا... صداقت وجود دارد و در اقوالش هم صداقت وجود دارد این انهو صادق قتعا خداوند متعال صادق هست هم در گفتار قولا و هم در کردار فعلا فعلا فعلا یعنی امیال نه فعلا یعنی از کار فعل قولا یعنی گفتار فعلا یعنی کردار. سیشور؟ شد؟ آره؟ و اصفه آخره. اوه تامنه از سرمدی از انت یا واحده سألتن آنفه پیشتر سوال کرده همی آلا از سرمدی فالله سبحانه قدیم ازلی لم یسبق بعلتی خداوند متعال او از قدیم ازل بوده و پیش از خداوند متعال هیچ علتی نبوده که خدا را به وجود آورده باشه دقت کنید چه میگیم این کتاب اگر درش دخالت نمیکردیم ما انسان باوجود وجود می آمد مگر اینکه خداوند متعال یک توری دیگه اراده می‌فرماشت درست شد پس این کتاب توسط دخالت انسان با وجود آمده است خداوند متعال یک دخالتگر ندارد که او دخالت کرده باشه و خدا با وجود آمده باشه چون این چیز نیست برای شد؟ اگر این گونه پس سوال اینه او را دخالت کرده؟ بعدش او ایش که دخالت کرده؟ ها بلاخره بوره تا آخر. هیچ به انتها نمیده لایت ناهی اصلا انت به انتها نمیرسه پس معنیش چیست؟ معنیش اینه که خداوند متعال آغاز همه چیز هست. و خداوند متعال پایان همه چیز هست. همونی که در دعای جوشن کبیر میخوانیم هول هو الاول و الاخر. درست در دعا یا نه ما اشتباه نکنم. نمی آ درست. من جو جمله است پیش خراب نشده باشه. خداوند متعال هم اول است و هم آخر است. ها یعنی هم آغاز است و هم پایان است. هم ظاهر است هم باطن است. درست؟ یعنی سرمدی یعنی فالله و سبحانه خداوند سبحان قدیم هست ازلی از ازل بودن لم یسبق که پیشی نگرفته با خداوند متعال بی علت یک علت بی یک دخالتگری علت هیچ علتی پیش از خداوند متعال نبوده که خدا رو به وجود آورده باشه بلکه خداوند متعال علت العلل هست خداوند متعال اساس همه هستی هستی درست است؟ بله. سوء الاسس. اساس. عارف تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.